فرماید فرماید <تصفح> سلام و علیک <عليك> متشکرم خیلی ممنون سلام و علیک <عليك> یا فقيه الله سلام و علیک یا نور الله از السلام علیک یا معز المؤمنین و یا مبیر الكافرین سیدنا مولانا یا صاحب الزمان عقیقنا و عدرکنا نحن المضطرون سلام عليكم جميعا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل أغدة من لساني يفقه قولي الحمد لله رب العالمين والصلاه على سيد المرسلين طبيبنا حبيبنا شفیق ذنوبنا ابو القاسم محمد وآله المعسومين سيما الحجة بقية الله في العالمين أرواحنا فداه ورزقنا الله رضاه واللعن على أعدائهم أجمعين أوسيكم عباد الله بتقوى الله شما بندگان صالح خدا برادران و خواهران خودم و خودم را به تقوای الهی توصیه می کنم تقوا نور زندگی تقوا کنترل است تقوا زندگی با منطق و عقل است تقوا خودپاییدن است تقوا رضای خدا زندگی کردن است تقوا امتیازی است که خدای متعال به کسانی که علاقه دارند در کارنامه سبک زندگی سبک فکر اخلاق رفتار پیش خدا آبرو داشته باشند، مدال رضایت خدا را دریافت بکنن و خدا اونها را مورد احترام و اکرام قرار بدهد تقوا رو باید رعایت بکنند اینا خلقناکم من ذکر او انسا و شعوبا شعوبم و قبائل لتعارفو اینا اکرمکم عند الله اتقاکم چه آیه است که لطائفی دارد؟ خدا قدرت نمایی فرده زن و مرد آفریده و در توسط سفره آفرینش رنگها، ها و تنوع در ها جسم و پیکر و اندام قرار داد. نمیشه شمارش کرد تنوع مخلوقات خدا رو جمله تنوعی که خدا در جسم انسانها در سیقه انسانها در زبانها، و در شعون مختلف خدای متعال متنوع کرده عالم رو. گلهای رنگارنگ همه آی خدایان خداماند ولی این تنوع در رنگ و زبان و، منطقه جغرافیایی و سلیقه در زندگی اینها برای تعارف خدای خود متعال خواست که همدیگر رو خوب بشناسید اگه یه جور بودید توجه به طرف مقابل نمیکردید، ولی تنوع خودش تعارف است لاکن این که کسی قد بلنده کسی چشم کسی موش نشکی هست کسی عبر و کمانه کسی صداش خوشه کسی خوش مشهوره نا پیش خدا براشون اعترنه میاره با اینا نمیتونید ادعا کنید خدا منو دوست داره خدا منو پسندیده اگر میخواهید خدا شما را بپسندد بد برای رضای خدا گناه نکنید برای رضای خدا وظیفه خودتون رو در ارتباط با خودتون با خدایتون با خانواده با همسایتون، با زیر مجموعه با بالاده با پدرمادرتون و با توده هایی که باشون تعامل می ببینید که چه باید بکنید خدا به خدا را خدا بدانید و خود را ملک خدا و بنده خدا جوان که باید جوان مرد باشد اگر پدر پیر و مادر رنجدیده خودش رو همواره برای رضای خدا در همه جا در همه شرایط تحملش کرد، اکرامش کرد از هیچ خدمتی نسبت به والدین پروگزار گذار نکرد این تقویست او ضعیفه تو قوی شدی او نانه تو قانون انرژی هستی از او کاری ساخته نیست ولی تو پرتلاشی معذالک خودت رو کوچک میبینی پدر و مادر خودت رو بزرگ میبینی اگر در برابر نیش زبان پدر و مادر لبخند زدی ده بوز, بوز دیدی، پا بوس دیدی میشه تقوای بالایی داری پیش خدای متعال نمره داری بانویی که عمری با مرد زندگی کرده گرمز پرد زندگی رو تحمل کرده هیچ وقت نق نزده هیچ وقت فشار برای زندگی نبوده حسابم با خدا باز کرده نه ضعف نفس زبونی باعث شده میتونسته خیلی جهاد داد بزنه طوفان بپا کنه اما برای خدا تحمل کرد فهمید که جهاد عزت است. جهاد مال و اولیا خداست و برای بانوان سنگری که اونها را به بلایت خدا نائل میکنه یک بانو میشود ولی کدا حسن تبعل است خوب شوهر کردن است اگر دانش آموز در مدرسه محصل در دبیرستان دانشجو در محیط دانشگاه دید آلودگی های وجود داره شیطان وستسهش بس می کند اما علاقه دارد آرزو دارد چشمش جمال امام زمان رو ببیند دوست دارد با این زبانش با مولای خودش با صاحب خودش صحبت کند تو محیط هایی که آسیب داره زبانش رو و چشمش رو به امام زمان خودش سپرد پاک نگه داشت بسیجی در سنگر بسیجش خودنمایی نداشت خودش رو نوکر امام زمان می و این مردم رو آئله حضرت خدمت به مردم رو خدمت به امام زمان می و نه با این تریبونها ها بسیج تبلیغ میشد. بلکه بسیج مظهر دیانت اخلاق پاک دامنی پاک سرشتی مردانگی شهامت شجاعت ایثار، این را مردم دیدن نشون میده که این قش پیش خدا اعتبار داره کن و دعا تناس به غیر در خود به اول در محضر قرآن این کنار دریای بی ساحله سوره مبارکه حمد قرار گرفتیم همراه شما انشاءالله خدا به جانمون عتش بدهد و با جرعه از این دریای بی سیرابمون سیرار بمون کند ایا که نعبد و ایا که نستعین در اینکه چرا در نماز با اینکه که رابطه بین من و خداست ولی هیچ جا خودم رو نمی بینم خودم را نمیگویم. گویم میگویم می گویم یا که ما تو را فقط عبادت میکنیم فقط تو را ما میپرستیم فقط از تو ما کمک میخواهیم نمیگم خدایا من بنده تو هم من عاشق تو هم این نماز من عشق بازی من است میگویم ما این کار را انجام میدهیم استاد بزرگوارمون علامه مفسر پرآوازه آوازه شاگرد اون مفسر پر آوازه نامه جاوادیه آمولی و مرحوم آیت الله حاج مصطفی فرزند امام رضوان الله تعالی در تفسیرشون مطالب مشابهی است <صحیح> که من استاد فرمایش این دو بزرگوار را چند جمعه به محضر شما تقدیم می‌دارم. مسئله ایا که معبد و ایا که نستعین یکی از این جهت است که انسان نماز گذار معدب است و عظمت محضر به قدری در او اثر گذاشته مقهور جلال و جمال خدا شده که خودش رو لائق بندگی نمی بیند لذا روش نمیشه بگه منم هستم اما جمع رو می بینه می گه ما تو را عبادت میکنیم. این عدب فوق العاده است دوم این که عبودیت وجه مشترک بین من و همه ممکنات است این کلو من و به عرض بلا آت الرحمان ابدا. من از این یم بی ساحل وقتی جدا بشوم خودم را نمازم را خدمتم را جده را و خلوصم را و خوبی هایی که خدا به من داده اگر خودم را مستقل با این خوبی ها ببینم ای هستم که از این یم نمی هستم که از این یم خودم را جدا کردم این یام جدا شده از یم حباب است که قرآن کریم از اون به زبد یاد میکنه قطره از دریا جدا بشود دیده میشود قطره ذوب شده در دریا دریاست هیچ نمودی ندارد اما قطره که از دریا جدا شد نمود داره ولی بود نداره این حاصل این برخوردهاست هاست توفان ها است و با توفان هم نابود می شود خوشا به حال کسی که باد ندارد خوشا به حال کسی که نمود ندارد هر کار میکنه برای نشون دادن به این و اون نیست میخواد او ببینه بینه خودی ندارد حتی به او نشون بدهد اینکه نمازگزار گذار زمین و زمان با او همراهی میکنند، گذشته و آینده همراه او هستن به انسان در یک مجموعه عظیم در یا آفرینش متصل شده همه از او حمایت میکنن در جهت عموم مخلوقات به سوی مقصد اعلی میبرندش خودی ندارد که برود قطره است که به دریا افتاد عظمت دریا او را بزرگ کرده ولی نمودی ندارد این خیلی افتخاره آدم نمازگزار خودش رو شکسته و باب وجودش رو فانه در عظمت جلوه خدا کرده است چون خودی ندارد تا بگوید منی هستم دریا را میبیند و دریا را هم به عنوان نعمت الهی به خود او برمیگرداند یا که نعبد و یا که مستعین تکبر اوج جب چقدر بده خودشیفتگی از خود رازی بودن خود و کارهای خود را به رخ اینون اون کشیدن نه آدم یه خنوتهایی داره یا عشقهایی داره یه, عشقهای یه سوزهایی داره اینا رو به روح خودش بکشه معلوم میشه خودش رو خیلی مهم می داند نعوذ بالله من شرور انفسنا و من فتن زماننا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ازا جاء نصر الله والفتح الفتح آرهی تناس دین الله افواجا فسبح صبح تا هم در پی تا توابا صدق الله العین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب لي صدری ويسر لي امری واحلل عقده من لسانی يفقه قولی الحمد لله رب العالمین نستغفر و نستعینو و نتوب و و نتوکلو علی اللهم صل على عبدک و رسولک امین وحییک و مبلغ رسالاتک شفیع ذنوبنا ابل قاسم محمم و علا اخیه و ابن عمه و وسیهی و خلیفته سید الوسیین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و علا سبته سید شباب اهل الجنة، الحسن و الحسین وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى محمد بن علي علي بن محمد الحسن بن علي والخلف الصالح الحجة القائم حجدت علی عبادت و امنائت فی بلادت به هم نتولا و من اعدائه نتبرعو الالله سبحانه از کم عباد الله به تقبل الله شما بزرگان مدعوبین خدا مهمانان ویژه جمعه رونق دهندگان به بازار بندگی اکرام کنندگان را جلال دهندگان به شعائر دینی را برادران و خواهرانم رو و خودم را به تقوای ناهی دعوت میکنم تقوا موجب تقرب است و بیتقوایی موجب دوری از خداست تقوا روح عبادت است که اگر انسان شب و روز مناسک انجام بده، رو که سجود بکنه اما کنترل نداشته باشه حریمی برای خدا قائد نباشه زبانش به قیبت آشنا باشه راحت دروغ بگوید نیش زبان داشته باشه منتظر باشه که یه کسی یه چیز بگه دیگه حیثیت و آبروی برای او باقی نگذاره بعدم توز بده که هیچ که نمیتونه به من چیزی سنگینتر از گل بگه اگه یکی بگه دهتا میگم روشو کم کردم اینا بی تقوائیه اینا هنر نیست اینا امتیاز نیست اینا بدبختیه اینا شقاوته اینا سقوطه اگه تونستی در برابر نفس قدار خودت کوتاه بیای روی نفس تو کم کنی و برای رضای خدا دندان رو دیگر بگذاری با عفت و اغماز زندگی کنی اون وقت معلوم میشه که تو مردی بانو هم فتوبتی دارد ارزهی دارد خدا را از خودش ناراضی نمیکنه، این مهم است اتقالا اتقالا ان الله مع الذين يتقون میدونی اگه تقوا داشتی خدا رفیقت میشه خدا در هیچ سختی تنهات نمیذاره میدونی بی تقوا باشی خدا رهات میکنه بیچاره میشی حامی نداری ناصر نداری در خطبه دوم مناسبت هایی که مناسب است تذکر داده بشود افتداعا روز هشتم ربیع اول روز شهادت پدر امام زمان ماست و امام یازدهم ما حضرت عبا محمد امام حسن زکی است بر مبارک صاحب خودم، آجانمون، امام زمانمون و به همه دلدادگان و مبالیان تسلیت عرض میکنم هیفته این ماه میلاد نور است ورشید وجود خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و کنم رحلت آیت الحق اون دریایی که لولو مرجان ها و سماهای از از دامن او با عالم اسلام رسیده است آیت الحق اللامه آمیزدگی آقای قاضی رضوان الله تعالی علیه رو تسلیع ترزی میکنم اما مسائلی که در این روزها در جهان اسلام اتفاق افتاده است مهمترین حادثه امیدوار کننده که نشانه استمرار عنایت خاص خدا و نصرت الهی بر مجاهدان مخلصان ایسارگران و ملایت مداران است متلاشی شدن شجره خبیصه داعش است که در واقع شکست ذلتوار مادر ناپاک داعش سهیونیزم بین الملل استکبار امریکا و اسرائیل عجب بد مادری هستند عجب بد تخمی رو در رحم عربستان و مزدوران دیگرشون کاشتند و بعد ثمری بود که در عالم بشریت ایجاد تشویش ناآرامی استراب و ناامنی کرد و اینها خوابی که برای جهان اسلام انقلاب اسلامی دیده بودند بعد از شکست در جنگ 33 روزه شش روزه 51 روزه این اسرائیلی که شاخ استکبار بود و جهان عرب در شش روز جنگ همه برشکسته وامونده اقبرانده شدند اون روز شعار عربیت میدادند هیچ کاری نتونستند بکنند ولی خدا در ایران انقلاب کرد پرچم هدایت جهانی را به دست یک دینشناس دیندار ولی فقیه عنوان نایب منجه نهایی عالم، آمد نشون داد کارهای نشدنی با ولایت مداری انسجام ایمان اخلاص جهاد شدنی خواهد بود سهرها باطل شد اون قدرتی که جهان عرب شیش روز نتونست باش در بیفته یک جمعیت کمی در جنوب لبنان با الهام از ولایت و با جهاد و شهادت اون چنان شکست توعم با ذلت بر این جرسومه تکبر شرارت خباست وارد کرد که تعم تلخش اصخونهای استکبار را هم تحت تأثیر قرار داد و برای اینها فراموش نشدنی بود به دنبالش جریان قضا آمد باز الهامی بود از ولایت و جهاد و شهادت عربیت نبود دین بود جهاد بود حرکت درست هدایت شده با علم و تقوی بود اینها وقتی دیدن نقشه های دیوینه شون داره نقشه بر آب میشه توتاهای متعددی رو در دستور کار قرار دادن که به الهی اینا خیال با انقلاب ما طرفند با ایران طرفند اسلام حراسی میکنن ایران حراسی میکنند خبر ندارند که ما نیستیم و ما رمیت از رمیت بلا که نالله رما همون گونه که انقلاب تیغمبر ما را قدرت های عصر ناتونستند ابو ها نتونستن, نتونستن. احزاب تشکیل دادند محاصره کردند قطع رابطه کردند از هر طرف در زدند ولی هر فشاری اوردند به تعبیر سردار طرف رازمون مالک اشتر زمانمون عبد الصادهمون چهره نورانی و دینی این فرمانده شجاع و ولایت تذیر و عاشق من سردار سلیمانی که هر پشاری ما دیدیم دیدیم که این مقدمه یک ولادت جدید است با یک فرزند نورانی جدیدی در این اسلام مواجه می شود و برکت بیشتری در خودش احساس میکنه اینا با جنگ و ایجاد آشوب و مجهز کردن گروهک ها و ترور و همه جور نقشه را علیه ما اجرا کردند هرچه کردن ما قویتر شدیم و آنها ضعیفتر شدند. ما پیش رفتیم و آنها پس رفتند. سه شوم دیگری رو که اینها در سر پرورندن ایجاد یک تجربه خویثه ننگین دیگری بود مجموعه جنایات گذشته تاریخ بشر را در این کانون ظلم و بیرحمی خلاصه کردند و جمعیتی را تحت عنوان داعش با یک خلافت جعلی اسلامی رغم زدند و صدها هزار کیلومتر از های دو کشور عراق و سوریه را غصب کردند. دهها و صدها مسجد را با مسجدیها تخریب کردند سوزاندند از جوانهای فریب پرده بدبخت به عنوان گروه های انتهاری هزاران فرد را از خانواده جدا کردند زایع کردند و از خود این بدبختها علیه خودشون به کار گرفتند و انواع جنایت‌ها را که سردار سرفراز حاج قاسم ما در نامهای که به مولای خودش به اسوه خودش و آموزگار خودش رهبر دلبر خودش نوشته بود هم تاریخ بود هم پذتفه تاریخ بود هم رمز پیروزی و شکست را در این نامه نورانی که سراسر ادب و تواضع بود اوورده بود بخشی از جنایات اینها را پوست تو، انسانها را جلوی خانواده چندند سر بچه های معصوم رو بریدند آدم‌ها را رو سوزندند و انواع جنایت های ناموسی رو مرتکب شدند دختران و زنانان رو به زنان رو به اصارت گرفتند بعد از تجاوز به فروش رسوندند چه جنایتی بود که میشد یک درندهی بکند به اینها نکردند همه جنایت ها را کردند، همه را هم با چراغ سبز اون مادر پلید و اون پدر بی پدرشون کردن که قید جمهور پیده امریکا در مبارزات انتخاباتی رقیب خودش را مورد سرزنش قرار می داد و می شما داعش رو درست کردید درست میگفت. اونجا سرزنش می کرد بلی خودش هم ادامه دهنده راه پلید اصلاح ناپاک خودش قرار گرفت. در این معجزه بزرگ که معجزه ایمان است مجاری نستت الهی اموری بودند در قدم اول رهبری توعم با اخلاص و الهام و تاییدات غیبی رهبر نهزت جهانی مستظفان رهبر عزیز انقلابمون بود دوم مرجعیت عظیم عراق حضرت آیت الله از سیستانی نفس خودشون رو نشون دادند. سوم بی بیبدیل بیریای عاشقانه آعرفانه سردار سلیمانی بود. چهارم، ایمان، ایثار، جهادت جهاد و شهادت طلبیه، جوانان رشید بستیجی ما بود که هم این الگو و عصبه جهانیان بستیجیان دلاور ایران از سردار همدانی گرفته تا شهید حججی همه در یک خط جان به اصطلاح به قول خودشون به رأی خودشون جان ناقابل خودشون رو به چف گرفتن بدون هیچ ادعایی بدون هیچ معطلی بدون هیچ تکریفات اداری اینها عاشق اونجا بودن و رو آوردن به جبهه جهاد و مقابله و همینطور بسیج مردمی سوریه و هشت و مقدس و ارتش دلاور سوریه و ارتش عراق و دو دولت مقاوم این دو چشور و دولت مردان ما مسئولین ما در این امر حمایت های در حد خودشون رو انجام دادند. واقعا این ما نبودیم لو انفقت ما فلعرض جمیعا ما علقتا بین قلوبه این امریکایی که دیروز عراق را مقابل ما قرار داده بود پرزندان یک خانواده را به جنگ علیه هم کرده بود امروز در صف واحدی مقابل دشمنان قدار ایستادهاند به این رویه است که آمدن امام اصر را نوید می دهد و می روید که امام زمان را الله تعالی در رأس امور حاکم و جهان ببیند اما مسئله بعدی مسئله بستیج است. بنده الله، فرمانده عزیز بستیج سردار قیل فرور مطالب مناسبی رو در فرصت کوتاه مطرح برمودند از بیانات عرشی و ملکوتی حضرت آقا مرجع بزرگوار رهبر اذیم شن، فرمانده بسیجیان آلم در دیدار بسیجیان مطرح برمودن من هم عنوان حق شناسی ارز می‌کنم که بسیج باید الگو باشد و با الگو هست بسیج است از اون قله که جامعه را با مکتب با رهبری مکتب مرتبط می کند بسیج بسیرت اخلاص اقدام به موقع و به اندازه بسیج تعبد بسیج یعنی زینت نماز جماعت ها مسجد ها بسیج یعنی اشداء علال کفار رحما و بینهم ما امید داریم که هم رسانه‌های ما و هم ارباب قلم هنر در تحکیم این شجره ای که به دست امام غرض شد و از حسنات زمان بود نه تنها در ایران یه خلعی رو پر کرد دیدید که در عراق چه کرد در سوریه چه کرد و امروز در یمن مظلوم چه میکند یمن هیچ ندارد جز ایمان و روحیه بستیجی این جنایتكار قارون مزدور بی ایاش عیاش زمان حکومت سعودی همه چیز دارد امریکا دارد اروپا دارد طول دارد اسلحه دارد همه چیز دارد اما در این چند سال این همه جنایت و بیرحمی و قصابت هیچی گیرش نیومده در پیروزی از آن یمن است زیرا که یمن بسیج خداست لشکر مخلص حق است. و شاءالله به همین زودی پیروز خواهد شد طلیعه بسیج که کام جهانیان رو شیرین کرد بعد از ایران حزب الله لبنان و این افتخار اسلام و عرب خار چشم امریکا و مزدوران منطقش و محبوب دلهای همه مسلمان ها سید حسن نصر الله و حزب الهی او که نوکران امام زمانان، جان برکفان و اثرگزاران در پهنه تاریخن، تاریخ سازان امروز و پردای ما هستند با الگوهای مناسب. مطلب دیگر، مسئله اجتماع محبان بیت اسمت و تهارت از کشورهای مختلف جهان بود، که مشاور بین رهبر معظم انقلاب آقای دکتر ولایتی این همایش را سامان دادن به چهره انقلابی و محب آل بیت این نقشه نقشه قرآنی است تا دنیا عشق علی و اولاد علی رو نکشد و زیر ولایت به معانی مختلفش بلایت رهبری بلایت اطاعت ولایت محبت ولایت سرز پردگی تا جهان به اونجا نرسد امام زمان تشک نمیارن قل ما از الکم اجرا اجرن الا فی القربا این اکثیر را باید در جهان مطرح کرد و دلهایی که با این اکثیر ذوب میشوند باید به هم متصل بشوند تا یک بسیرت یک آگاهی یک خیزش و مومی جهانی زیر پرچم ولایت و محبت بیت اسمت و تهارت واقع بشود مطلب آخر مسئله زلزله، است زردله این مصیبت بزرگی بود و جان صدها انسان رو گرفت به جامعه ما را از ادامه حیات اونها محروم کرد این این سرزله امتحان بزرگ خدا بود البلا او للمؤمنه امتحان ولی ظالمه عدد ولی انبیاء درجه و در بعضی از من شنیدم ولی سندش رو خودم ندیدم همین سه چیز بود ولی اولیاء کرامه بلا برای مؤمن امتحان است هم برای زده ها که الحق حضور حضرت آقا هم تسلیت بود براشون هم نکاتی که در اونجا فرمودن اینا کاشانه جرمی جر می داشتن زندگی آرامی داشتند، الان در چادرها در این سرمای سخت به سر میبرند عواطف انسان جریهدار می شود بزا در مرحله نجات همه مسئولین دولت حلال احمر، خصوصا ارتش و سپاه در مرحله نجات به فضل الهی مجاهدانه عمل کردن به موقع حضور پیدا کردن اما در مرحله امداد کار زیاد داریم باید خانه های مناسب حد از این خانه های پیش ساخته از این کانیکس مردم که همیشه طرف راز بودند، در جبهه طرف راز بودند، در همه امتحانات افتخار بودند در تاریخ بشر، امروز هم این مردم همه نوع کمک رو میکنند ولی مدیریت واحد میخواهد در مسئله کمک رسانی و نجات نقش به این آقای دکتر کولوند هم در 40 خیلی آشقانه حسینی در محضر بودن الانم حضورشون در اونجا و تیم های پزشکی و تیم های پزشکی بسیج و اینها جای تقدیر و تشکر از معامله با خداست اما هنوز مشکلات زیاده مردم گرفتارن مصیبت ادامه داره این بچه زیر این چادرها رنج میبرند. این بانوان طاقت این نوع سرماه و سختی ها رو نداشتن رضا الله هم کمک بخوایید با اون اخلاصی که دارید ادامه بدید و مدیریت صحیح انشاءالله بتواند مشکلات را حل کند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ و الناس ناست ملک الناس اله الناس من شر الوسفاست الخناس لذنی واسطه فی ظهور النوست لنال جنت و ناس خدایا به اسمت حضرت زهرا به خمسه طیبه ظهور امام زمان رو در زمان ما قرار بده حضرت دیدار حضرت خدمت عاشقانه و عارفانه فدا شدن در نظرشون برای اسلام را بر دل ما مگذار سایه پربرکت رهبر عزیزمون رو تا ظهور بر سر ما مستدام بدار ملت عظیم و ما را دشمن شاد مکن مشکلات معیشتی مردم مشکل بیکاری جوانهای ما را به اسمت بیبیمون حضرت زهرا با رحمت واسعی خودت و قدرت قاهره خودت بر طرف بفرما اله مشکلات فرهنگی ما را سامان عنایت بفرما گناه حرام خوری بیبندوباری ابتزال بیکاری کمکاری تمبلی كسالت بدبینی ایجاد فتنه اختلاف ایجاد دعیت دو, دو قطبی که همه اصلحه های شیطان است و ننگ بشریت است خدای از این منبکت بیشکند بفرما حق محمد و آل مرزا من مریض های سفارش شده خصوصا شفا مرحمت بفرما آقابت بخیری برای خود ما و کسان ما مقدر و محتوم بفرما برای شفای بیماران خصوصا آیت الله خایره شیرازی و بیمار مورد نظر و چند بیمار سفارش شده یک هم توامه با سلامات قرائت بفرما